مصنوی معنوی مولوی برنامه 166 سکایت صدر جهان بخارا که هر سائل که به زبان بخواستی از صدقه آمه بدریقه او محروم شدی و آن دانشمند درویش فراموشی و فرت هر و تعجیل به زبان بخواست در موکب صدر جهان از وی رو بگردانید و او هر روز هیله نو ساختی و خود را گاه زن کردی زیر چادر و گاه نابینا کردی و چشم و روی خود بسته به فراستش بشناختی الا آخر <متصفح> در بخارا خوی آن خاجه عجل بود با خواهندگان حسن عمل داد بسیار و عطای بیشمار، تا بشب بودی ز جودش زر نسار. زر به کاغذ پاره پیچیده بود، تا وجودش بود می افشاند جود. همچو خورشید و چو ماه پاک باز، آنچه گیرند از زیا بدهند باز. خاک را زربخش کبود آفتاب زر از او در کان و گنج اندر خراب هر سباه یک گروه را راتبه تا نماند امت زو خایبه مبتلایان را بوده روز عطا روز دیگر بیوگان را آن سخا. روز دیگر بر علویان مقل با فقیهان فقیر مشتغل روز دیگر بر تهی دستان آم روز دیگر بر گرفتاران وام شرط او آن بود که کس با زبان زر نخواهد هیچ نکشاید لبان. لیک خاموش بر حوالی رهش، ایستاده مفلسان دیوار وش. هر که کردی ناگهان با لب سوال، زونه بردی زین گناه یک حب مال. من سمت منکم نجا بود یاسهاش. خامشان را بود کیسا و کاسش. نادرا روز یکی پیره بگفت ده زکاتم که منم با جو جفت. من کرد از پیرو، پیرش جد گرفت. مانده خلق از جد پیر اندر گفت. گفت بس بی شرم پیری ای پدر پیر گفت از من تویی بی شرم تر که جهان خوردی و خواهی توز تم کان جهان با این جهان گیری جمع خندش آمد مال داد آن پیر را پیر تنها برد آن توفیر را غیر آن پیر ایچ خواهنده از او نیم حبه زر ندید و نه تسو نوبت روز فقیهان ناگهان یک فقیه از هرس آمد در فغان کرد زاری ها بس چاره نبود گفت هر نوعه نبودش هیچ سود روز دیگر با رگو پیچید پا ناکسن در صف قوم مبتلا تختها ساق بست از چپ و راست تا گمان آید که او اشکسته پاست دیدش و بشناختش چیز نداد روزی دیگر رو بپوشید از لباد هم بدانستش ندادش آن عزیز از گناه و جرم گفتن هیچ چیز چونکه که شد ز سد گونه مکید چون زنان او چادره برسر کشید در میان بیوگان رفت و نشست سرف افگند پنهان کرد دست همشناسیدش ندادش صدقه در دلش آمد زهرمان هرقه رفت او پیش کفنخواه پگاه که بپیچم در نمد نه پیش راه هیچ مکشا لب نشین و مینگر تا کند صدر جهان اینجا گذر بو که بیند مرد پندارد بزن زر در اندازد پی وجه کفن هرچی بدهد نیم آن بدهم تو همچنان کرد آن فقیر سلجو در نمد پیچید و بر راهش نهاد معبر صدر جهان آنجا فتاد زردر اندازید بر روی نمد دست بیرون کرد از تعجیل خود تا نگیرد آن کفن خواه آن سلح، تا نهان نکند از او آن ده دله. مرده از زیر نمد برکرد دست، سر برون آمد پی دستش زپست. گفت با صدر جهان، چون بستدم، ای ببسته بر من ابواب کرم، گفت لیکن تا نمردی ای انود از جناب من نبردی هیچ جود سر موت و قبل موتن این بود کس پس مردن غنیمت ها رسد غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدای ای هیلگر یک انویات به صد گون اجتهاد جهد را خوف است از صد گون فساد ون انایت هست موقوف ممات تجربه کردند این ره را سقات بلکه مرگش به انایت نیز نیست به انایت هان و هن جای ما است. آن زمرد باشد این افعی پیر، به زمرد کی شود افعی زریر؟ حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی امرد. در عزب خانه خفتند شب اتفاقا امرد خشتها بر مقعد خود انبار کرد. عاقبت دباب دب و وان خشتها را به حیله و نرمی از پس او برداشت. کودک بیدار شد به جنگ که این کو؟ کجا بردی و چرا بردی؟ او گفت تو این ها را چرا نهادی؟ الی آخر امردی و در انجمن آمدند و مجمع بود در وطن مشتغل ماندند قوم منتجب روز رفت و شد زمانه سلس شب زان زآن خانه نرفتند آن دو کس هم بخفتند آنسو از بیم اساس کوسه را بر زنخدان چهار مو لیک همچون ماه بدرش بود رو کودک امرد به صورت بود زشت هم نهاد ان اندر پسکون بیست خشت لوتی دب برد شب در خشت ها را نقل کرد آن مشتهی دست چون بروی زد او از جا بجست گفت هی تو کیستی ای سگ پرست گفت این سی خشت چون انباشتی گفت تو سی خشت چون برداشتی کودک بیمارم و از ضعف خود کردم اینجا احتیاط و مرتقد. گفت اگر داری زرنجوری تفا چون نرفتی جانب دار و شفا. یا به خانه یک طبیب مشفقی که گشادی از سقامت مغلقی. گفت آخر من کجا دانم شدن که به هر جا می روم من ممتحن چون تو زندیق پلید ملحد می بر آرد سر به پیشم چون دده خانقاه که بود بهتر مکان من ندیدم یکدم وی امان رو به من آرند مشت همزخار چشم ها پر نطفه کف خایفشار وان که است خود از زیر زیر غمزه دزدد میدهد مالش به ایر خانقه چون این بود بازار عام چون بود خرگلب و دیبان خام خر کجا ناموس و تقوا از کجا خرچه داند خشیت و خوف و رجا عقل باشد ایمانی و عادل جو برزن و برمرد اما عقل کو ورگور من روم سوی زنان همچو یوسف افت در افتتان یوسف از زن یافت زندان و فشار من شوم تازه بر پنجا دار آن زنان از جاهلی بر من تنند اولیاشان قست جان من کنند ناز مردان چاره دارم نه زنان چون کنم که نه از نه از بعد از آن کودک با کوسه بنگریست گفت او با آن از غم بریست. فارغ است از خشت و از پیکار خشت و از ما مادر فروش کنگ زشت. برزنخ سچار مو بهر نمون بهتر از سی خشت گرداگرد گرد کن. ذره سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش تاعت پرست. است. زان که شیطان خشت تاعت برکند، گرد صد خشت است خود را ره کند. خشت اگر پر است، بنهاده تو است، آن دو مو از عطای آن سو است. در حقیقت هر یکی مو زان، کو کان امان نامه سلی شاهنشاه است تا اگر صد قافل <سؤال> بنهی بر برکند آن جمله را خیر اثرے از موم اگر مهر نهد پهلوانان را از آن دل بشکہند آن دو تار عنایت همچو سد شده چون فر سیما در وجوه خشت را مگذار ای سرشت لیک هم ایمن مخاسب از دیو زشت رو دوتا موزان کرم با دست آر بانگهان ایمن بخاسبو غم مدار نوم عالم از عبادت به بود آنچنان علمی که مستن به بود آن سکون سابه اندر آشنا بهز جهد اعجمی با دست و پا اعجمی زد دست و پا و غرق شد می رود سباه ساکن چون آماد، علم دریای است. به حد و کنار طالب علم است غواس بهار گر هزاران سال باشد عمر او او نگردد سیر خود از جستجو کان رسول حق بگفتند در بیان این که من هم من همالا یش آن در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود منحومان آن طالب الدنیا و طالب العلم که این علم غیر علم دنیا باید تا دو قسم باشد اما علم دنیا هم دنیا باشد الى آخر و اگر همچنین شود که طالب الدنیا و طالب الدنیا تکرار بود، نه تقسیم مع تقریره ها. طالب الدنیا و ها طالب العلم و تدبیراتها پس در این قسمت چو بگماری نظر غیر دنیا باشد این علم ای پدر غیر دنیا پس چه باشد آخرت کتکند زینجا و باشد رهبرت بحث کردن آن سه در تدبیر آن واقعه رو بهم کردند هر سه مفتتن هر سه را یک رنج و یک درد و هزن هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم هر سه از یک رنج و یک علت سقیم. در خموشی هر را خطرت یکی. در سخن هم هر را حجت یکی. یک زمان اشکریزان ریزان جملشان بر سر خان مصیبت خونفشان. یک زمان از آتش دل هر سکس برزده با سوز چون مجمر نفس مقالت برادر بزرگین آن بزرگین گفت ای اخوان خیر ما ننر بودیم اندر نسح غیر از هشام هر که با ما کرده گله از بلاو و فقر و خوف و زلزله ما همی گفتیم کم نال از هراج صبر کن که صبر و مفتاح الفرج این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون چه شد؟ ما نمی گفتیم اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خوش. مرس را وقت تنگاتنگ تنگ جنگ گفته ما که هین مگر دانید رنگ. آن زمان که بود اسبان را و تا جمله سرهای بریده زیر پا ما سپاه خیش را هی هی کنان که به پیش آیید قاهر چون سنان جمله عالم را نشان داده به صبر زان که صبر آمد چراغ و نور صدر نوبت ما شد چه خیره سر شدیم چون زنان زشت در چادر شدیم ای دلی که جمله را کردی تو گرم گرم کن خود را و از خود دار شرم ای زبان که جمله را ناسه بودی نوبت تو گشت از چه تن زدی ای کو پنده شکر تو، دور توست این دم چه شد های تو؟ ز دلها برده صد تشویش را نوبت تو شد به جنبان ریش را. از غری ریش ار کنون ای، پیش از این بر ریش خود خندیده ای. وقت پند دیگرانی های های. در غم خود چون زنانی وای وای. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. بانگ برلشگر زدن بود ساز تو. بانگ برزن چه گرفت آواز تو؟ آنچه پنجه سال بافیدی فیدی حوش، زان نسیج خود بغل قلتاق بپوش. از نوایت گوش یاران بود خش، دست بیرون آر رو گوش خود بکش. سر بودی پیوسته، خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. بازی آن توست بر روی بساد، خیش را در طب آر و در نشاد،